این داستانک گنجشک و بچه‌هایش. گنجشکی چهار تا از بچه هاش رو به آشیانه پرستو برد و بزرگ کرد. جوجه گنجشک تازه پر درآورده بودند بودن که روزی باد سهمگینی آشیانه اونا رو خراب کرد. خوشبختانه جوجهها میتونستن پرواز کنند و تا حدی مراقب خودشون باشند. ولی مادرشون نگران بود که اونا خیلی زود و پیش از اینکه یاد گرفته باشن چطور با خطر روبرو بشن و؟ چطور در برابر خطر خودشونو حفظ کنن وارد دنیای بزرگترها بشن. پاییز که شد تعداد زیادی از گنجشگاه در زمینی شخم زده گرد هم جمع شدن. بدر و مادر بچه گنجشگاه بچه های خودشون رو در بین پرنده ها دیدن و زوغ زده اونها رو به خونه روی همون درختی که روی اون بزرگ شده بودند بردند مادر به بچه هاش گفت بچه های عزیزم نمیدونین چقدر دلواپس شما بودم تمام تابسون و دنبالتون گشتم آخه قبل از اینکه چیزی به شما یاد داده باشم با اون باد سهمگین از ما دور شدین حالا به نصیحت من گوش کنین و از پدرتون همه چیز رو یاد بگیرین. چون معمولا خطرات بزرگی سر راه بچه گنجیشگا وجود داره. بعد مادر از بچه ها پرسید که تابستان رو چطوری گذروندن و آیا غذای کافی داشتند یا نه؟ یکی از اونا جواب داد در باقی پر از زرخت های میوه بودیم و قبل از اینکه گیلاس‌ها گیلاس ها برسن ها رو شکار میکردیم. پدر پرنده ها گفت پسرم چه کار خوبی؟ ولی همیشه خطر در کمینه. باید خیلی مواظب باشین. به خصوص وقتی که آدم میانو در بین درخت و قدم میزنند. گاهی هم ممکنه شاخه بزرگ سبزی رو ببینند که به نظر جای خوبی برای نشستنه ی پرنده است. در حالی که ممکنه حفره یا سوراخی زیر اون شاخه باشه. بچه گنجشک جواب داد بله پدر میدونم. برگای کوچکه سبزم چسب مخصوص بدام انداختن پرنده ها رو میزنن و با اونا روی حفره ها رو میپوشونن پدر پرسید اینو کجا دیدی؟ بچه گنجش گفت در باغی تاجر پدر با صدای بلند گفت فرزندم همیشه به یاد داشته باش که نه تمعکار باشی و نه سست و کمکار بعد گنجش که با تجربه از بچه گنجش که دیگه پرسید خب تو کجا بودی؟ اون جواب داد در قصر. گنجشگاه و پرنده های ساده و معمولی خبر ندارند که حتی در استبل شاه چقدر طلا پارچه های محمل و ابریشمی براغ و انواع اقسام چیزهای عالی و شگفت‌انگیز پیدا میشه اونجا جاییه که در اون جو و گندم وزن می کنند. بنابراین همیشه شانس اینو داره که برای صبونه بیش از مقداری که می‌تونی بخوری. بله پدر وقتی اونا سرگرم وزن کردن قلات و دادن آب و غذای اسبا هستند پرنده های مثل ما میتونند دلی از عذا در بیارند گنجشک پدر پرسید کجا این همه نعمت و فراوانی پیدا کردی؟ گنجشک جواب داد در حیات قصر آ پسرم گوش کن اگر در قصر بودی و آدم های مهمی دور و برت بودند حتما وضعت خوب بوده که حتی یک پر هم از تو کم نشده شک نیست که چیزای زیادی یاد گرفتی تا بتونی شجاعانه در این دنیا از خودت دفاع کنی با وجود این باید مراقب خودت باشی چون گرک ها اغلب دنبال سکای کوچک و ضعیفن بعد پدر از سومین گنجش پرسید خب کچولو تو چطور؟ این چند وقت و کجا گذرودی؟ سومین گنجشک جواب داد بیشتر در خیابون‌ها و جاده ها میگشتم. چون کیسه های پر از دانه های گندم و جو و ذرت و اغلب آویزون میکنند و همیشه مقداری از دانه ها رو زمین میریزه. گنجشک که پدر گفت: «خب متوجه شدم ولی تو باید خیلی مراقب می بودی. چون اگر سنگی و به طرف تو نشونه میگرفتند کار تمام بود. گنجیشک کوچک جواب داد من کاملاً حواسم جمعه به خصوص وقتی نزدیک دیواری هستم و کسی به طرف سینه یا جیب خودش دست میبره پدر پرسید این زرنگی ها را از کجا یاد گرفتی؟ گنجیشک جواب داد از کوهنشین ها یاد گرفتم که هنگام سفر بدون اینکه کسی بفهمه با خودشون سنگریزه حملی میکنند پدر گفت کوهنشینا ها آدمای کاری و فوقلادهی هستند. تو واقعا با جبون های کوهنشین هم بودی پس خیلی چیزا یاد گرفتی. سرانجام پدر از کوچکترین گنجشک پرسید، کوچولوی نازنین من تو از همه ساده تر و ضعیفتر بودی. بیرون از خونه پرنده های خشن با منقارای خمیده و پنجه های قوی وجود دارند که همیشه در کمینن تا در یک حرکت قافل گیر کننده پرنده های ببلن. تو بهتر توی لونه در کنار خونواده بمونی و به خوردن انکبوت و کرمای درون خونه یا روی درختا اکتفا کنی تا جای امن و بیدرد سری هم داشته باشی. گنجش کوچک جواب داد پدر شما سالهای زیادی زندگی کردین و در تمام این سالها روزی شما رسیده و کسی هم به شما صدمه ای نزده اقاب و پرنده های شکاری هرگز آسیبی به شما نزدن اون به خاطر اینه که در امان خدا بودین و اون روزی رسانه اون آفریننده و نگهدارنده همه پرنده ها، آدم ها، جنگلا و شهر هاست. او صدای کلاخهای کوچیک محسوم و میشنوه و اونها رو حفظ میکنه و حتی یه گنجش بدون اراده اون به زمین نمیافته. که پیر گفت تو این حرفا رو از کجا یاد گرفتی؟ اون جواب داد براتون میگم. وقتی اون طوفان محیب ما رو از هم جدا کرد من به درون یک کلیسا پرت شدم و تمام تابستون اونجا موندم. و با خوردن مگس و انکبوت زنده موندم. این کلمات رو هم از زبان کشی شنیدم. خداوند که نگه دارنده همه گنجیشکاز دانه و آب منو در کلیسا فراهم کرد تا من که کوچک و ضعیف بودم از آسیبها و خطرات بیرونی در امان باشم و زنده بمونم. پدر در جواب گفت پسرم، حق با توه. تو اونجا پرد شدی. کلیسا را از مگزها و انکبوت ها پاک کردی و با جیک جیک خودت خدا را خوندی. مثل کلاخ های که به آفریننده خودشون ایمان دارند. حتی اگه سراسر دنیا پر از موجودات بدخواه هم باشه، ما همیشه در امنیت کاملیم، چون خداوند نگهدار همه است. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای سوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام s t i نوکت مهران دوستی .dot کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی